اکنون که ز خوشدلی به جز نام نماند، یک همدم پخته جزمه خام نماند، دست ترب از می باز مگیر، امروز که در دست به جز جام نماند. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود، زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس جو نباشیم و همان خواهد بود. آنها که جهان زیر قدم فرسودند و در طلبش هر دو جهان پیمودند آگاه نمیشونم که ایشان هرگز زیینحال چونان که هست آگه بودند افسوس که سرمایز کف بیرون شد و از دست عجل بسی جگرها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از وی که باول مسافران عالم چون شد